و همراهان گرامی در صفات اجتماعی معصد مطالعات اقتصادی حقوق ای افغانستان السو سازمان اجتماعی صفیق و رادیو آنلاین لای... راه اپریشن به برنامه کسادگرایی در افغانستان کش آمدید در این برنامه با حضور کارشناسان و اخبداران علمی کشور کارایی کسادگرایی را در افغانستان بررسی می گیرند اخلاقی چیست کارایی کسادگرایی اخلاقی در افغانستان چی میباشد نقش کسردگرای اخلاقی در ایجاد و ترویج هنجارهای مدارا در افغانستان چگونه است؟ چگونه که کسردگرای اخلاقی در راستای حل منادار و رسیدن به سل اجتماعی در افغانستان برمند شد؟ این سوالات را با مهمان برنامه بکنکاش میکرد. مهمان من در این برنامه جناب دکتر محمد وحید بینیش، رئیس پیشین دانشگاه خاتم النبی و از نخبگانی علمی کشور است، جناب دکتر بینیش خوش آمدید به برنامه کاثر وشناس دکتر نظر شما کسرتگرایی چی هست اگر گزار به کسرتگرایی داشته باشین کسرتگرایی چی هست آیا در افغانستان در جامعه افغانستان شما جامعه را که بررسی میکنید ماهیت جامعه افغانستان با کسرتگرایی سازگاری دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از شما همکاران میکنم از برنامه بوبتان اسفتگرایی پاید یک مقدار با احتیاط هم صحبت میکنیم که ما در بخش مسائل اخلاقی اجتماعی فرهنگی و اینی حد نفل با ستکتیک های قایل شد در بحث اجتماعی و مهمنیه که ارزش ها و ها و باورهای دیگران و احترام گذاشتن بم و هدایت جامعه و سمت وفاق و همگیری و همپذیری در مبنای همین پذیرش همپذیری وختی در باورهای دیگران و احترام به ارزشهای دیگران و نگاه مثبت به قرق و امعنات و سنن دیگران خودی زمینه هم تدیدید در جامعه فراهم است. البته در باور دینی کسی ها مورد اشکالات واقع شدند با اگر انسان ها به چند دین باور داشته باشند خب اعتقادشان خط شدار ولی نوشن فکران و نواندیشان دینی هم اعتقادشان بری میکرد اعترام و تقدس. هر دین برای هر خردی که به اون باورد داره خوب هم لازم است و هم ضروری ولی احترام بعدیان دیگران احترام به با باوردهای دیگران باز خودش یک است که مورد قبول همه است و این نشانه اینه که جامعی سالم و یک اجتماع با فضیلت بر اساس احترام به با باورها و باوردهای دیگران شکلی از این جهد که کستتگرایی در بالوان یک راه همدلی همیاری و همفضیلی در جاوم امروزی مطرح کنیم و بسیاری از موارد اتفاق نظرها هست حتی در مسائل مینی هم عرض کردم که بسیاری اتفاق داریم که ما بسیاری از فضایل هم میتونیم از دیگران نفضیلیم شاید یک فضیلتی نهد که ما خیلی برجسته باشه ولی اجامی دیگه و اون توجهش کمتر باشه ولی یک فضیلتی رو اونا برجسته دیدنه که ما توجه دیدنه و اون برای ما واجبه اینکه یک چیز مطلق در همه جا سای و جایی باشه کم پیدا میشه دیگر نگاه کرران و نگاه گرا شاید بتانیم که جامعه رو بسند بشرفت و همزینی دهنم شکر جناب جنابی بستاد تبگیر شما از کسرتگرای اخلاقی چی است؟ یعنی کسرتگرای اخلاقی چی هست؟ و چرا کسرتگرای اخلاقی در میان انواع کسرتگرای شکل کرده؟ کسرتگرای اخلاقی هم برمبناه تحریف کردیم در حقه اونمون طرزش هاییست که در جوامی مختلف و در بین انسان‌های مختلف ما میدینیم حالا ما نامون فضیلت اخلاقی بگذاریم یا باور اخلاقی می‌گویید یا ارزش اخلاقی می‌گویید؟ به هر صورت ا اعتقاد شن اینه که ارزشها در همه جوامع یکسان در همه جامعه خوبیست نیست، بدی در همه جامعه بدی نیست. ولی گفته خیلی شاید در کل صدق کنند. وقتی اگر میگوییم ما خیلی سیاست و سفید باشه ولی اگر شما یک کمی از این قضیه ها بتانید رنگیتر می‌بینیم میبینیم که بلی سری از دوامی حضرش ها دارسته که حضرش هستانی نیستیست نزده اینجا بحث مثریت پیشمه تکسر گرایی بازم که شما پرمودین با مثریت های یکیستر در غرف یکی گرفتن نفتن مثریت و تکسر گرایی هر بیش یک چیزه تفاوتی نداره با اما در ویزای درست، شاید مفترض نیستگیره یا یا نیستگیره یکی از پرکامیه که از محلفه های تکسرگیره است کل تکسرگیره هی نیست حضا نیستگیره ها را خواست تقدیم بلدی کردن حالا شاید داشت نماشه ولی تکسرگیره اخلاقی به هر صورت محلان شده که ما فضیلت ها و هایی که در جمعه هست سعی کنیم به همه اینها نگاه مصبت داشته باشیم و احترام بگذاریم و اونهایی که با ما نزدیکن همخانی بیشتر دارن مورد همدیدی بیشتر قرار میگیرم و میتانیم در مبنای اون یک تفکر جمعی یک نگاه مثبت شکل بده تا جامعه را به سمت صلح و همدیدی و همفکری بشونه مناسبت نمصد... کارایی تسردگره اخلاقی در افرانستان چیگونه می با توجه به تعدد قوم ها و تعدد زبان ها همچنان تعدد فرهنگی در افرانستان وجود دارد چیگونه تسردگره اخلاقی موجود مدارا و همدیگر فضلی در افرانستان شیم می به نظر می خیلی کارایی دارد در دینه که ما اول باید اخلاق در بینید چید که ما فرمودید جامعه یک بار یک تعریف دقیق بگونی یعنی عدیده های ساد خوب در انعنات و عرف جوامی ما هست جوامی قومی ما اقوام مختلف دروه مختلف قومی سنت و عقاده دارند. که این سنت و آداب در فضیلت‌ها و عربش های خوب بتمید تردیم شود و شود و برای دیگران هم اونگو باشه به نظر میاد که قدم اول ما کلاش بکنیم که اون پایین های نصفت یا اون برمای شما تصادگرایی افلاقی اگر تردیم درسته باشه اینه ما بتانیم در جامعه مختلف شناسهی بکنیم مطالعه همیت روش بکنیم و این حالا ببینیم که واقعا در جامعه چه کار برد دارن خب شما در یک جامعه ارزش هست یک جامعه دیگه از یا یک فضیلت بسیار خوب هست که میتونه ها رو به هم همدل بسازه نزدید بسازه ولی یک قوم دیگه اطلاع نداره دوزا دو بر از از که مدفتره اول سعی کنیم که این ارزش ها و این باورها و این سنت ها و این آداب و رسومی که در اقوام مختلف و های مختلف جامعی ما هست یک بار یک مطالعه همین صورت میره کارشناسانه بعد بریم دنبال این که خب این پدیده ها رو در سطح کلام ملی چیدونه میتونیم تبین بکنیم و در یک تفکر جامعی که در اون همکسرتگرایی افلاقی جایداش بر دسته باشن هم وفاق ملی شکل دیده این ایتانه واقعاً به نظر من خیلی امکانی است مثلا یک قابل شما تصور کنیم که در شجاعت خیلی نام یا در سخاوت ما بین خود ما در جامعه ما مردمان دو داریم بسیار مهمان نواز، بسیار مردمان سخی و تعدیر خودمون. خود و این سخاوت یک خضیفت از این یک عرضش من چی کار کردن در این سخاوت چی؟ میکانیزم آیر پیش میگیرن که نام سخاوت شغره شدن سخاوت تنها در پنگ کردن سفره بسیار رنگی نیست سخاوت میتونه در بخشش های معنوی هم باشه. برکرد های بسیار مسترد هم باشه این سخاوت ها ما باید شناسایی بکنیم ارزش دوست کنیم قوم دیگر هم شناسایی بکنیم بعد در ها یک جنبنگی بکنیم که این ها چقدر میتونه در کل جامعه هم پذیر کردیم به نظر من این یک کاری که میگم از شما به عنوان یک معصول تحقیقاتی واقعاً میتونیم در این زمینه همین مستاد دانشگاه ها ممتزکانه که مشکلات ما این است که مطالبی که در دانشگاه های ما تدریس همه اون درست از که از غرب آمده و بیشتر محاموزه های غربی سر کار داره نزا در جامعه ما بیشتر کم دیموکریسی ما با عنوان یک عرضش غربی میشنسیم عرضش امریکایی میشنسیم در حالی که ما دیموکریسی های متفاوت بریم و شاید یکی از موفقهیم دیموکریسی های دنیا شاید جامعه ما اگر دقیق متعامل کنیم تناصر و معلفه های کسی باید از دیمکریسی خود اسلام این شورای که از مفاهیم بسیار ها است که دانشمندان اسلامی مثل موضوعی مثل آقای و دیگران تحکیل دارون که میتونیم ما بر اساس شورا دیمکریسی وز کنیم نه نیست که ما از غرب خود غرب شما میریم دیمکریسی آمریکایی با اروپایش متقاوت و تجویزهای همی که میکنه و لذا این شریفه بحثات برنگر من باید تولی یا یعنی ما چند مرحله بکنیم مرحله اول دنبال یک مطالعات همید برنگردارم تصویل صورت نگرد یعنی ما بحثات تحقیقاتی نگرد یعنی نگاه شما این است که بین مصداق هایی که از کس رد کرد اخلاقی در جامعه افغانستان وجود دارد در, در اون مختلف هیوان اساسی رو لازم ایجاد کنم بعد از مطالعاتم. ها تعمیم و شما نقش اتاقای فکری مثل سو و همچنان و همچنان در نیحان نسازی این رویکرد و از است چیگونر زیاده نکنم؟ سریعه، من هرز مهمی هم می فرماید شما دقیق قدیق کنم و هرز میده که نهادهای های علمی یکی از که که هران در نهاز های ایرانی آمده در بحث از نوعی نام اینا هم اینه که چقدر پاجامه داره توان پیوند اجتماعی نهاده ایرونی چقدر است در بیشتر مسلمه که مطرح کرد پیوند صنعت و بازار مطرح کرد همه چیزی چون تجاری میبینه همه چیز چون مادی میبینم اونا مفتن که ما فنناوری رو و بگویدیم که همه حتی نوم انسانی را فیزیکی رو مادی کنیم حقوق به عنوان یک خالا و ابزاری تبلیحاتی مدرح کردیم جامعه شناسی همین سیاست تبلیحاتی میز. اما ما زمن این طور کار نیست در یک حد محکولش کار آفرینی در همه اشناعات شده خوب است نه در بحث های فیزیکی و مادنی در علوم انسانی هم خیلی کار بود دارد حقوق شما کار آفرینی بسازید کار آفرینی بسازید خیلی کار درست است ولی ما میگیم زمن این طور بحث شما داریم نگاه ما به عنوان این جامعه اسلامی نگاه مادی تنها نیست نگاه اخلاقی و معنی هم هست در این نگاه اخلاقی ما پیوندهای امیتا بر اساس اخلاق و معنییت میتونیم ازداد کنیم کاموساید مردی بزار شما دقیق شاید صحبت من دقیقتر بود که ما مستقی این افلاق و نمونه های افلاقی درد جوامی خود ببینیم بی پیدا کنیم چرا دلینی هم که حالا کار نشده ما دستوانه جامعی هستیم که مبنای کارهای علمی ما تا حالا شفایی بوده مکتوب نبوده ما الان یک قرن اخیر اگر بررسی بکنید ما چند تا کتاب منداشه چند تا مقاله علمی منتشر کردیم چقدر نهاده علمی ما کارهای عمی کردن قبیله واخر اکتیاد کارهای بوده شده پارنامه‌ای تحصیلی نوشته شده انصافاً کاره ولی همین که ما بریم به این سمت و این مسائل بسیار دقیق معناییته در جامعه بومی خود اخلاق در جامعه بومی خود و ارزشها در جامعه بومی خود بررسی بکنیم و بعد بیایم اینها رو با هم ترکیب بکنیم و بتانیم یک مجموعه یا یک سیستم منظم از اوگذرگیزم اخلاقی بسازیم زمین این که میتونیم ماید بعدا این علماشوهایی مثلاقار داریم در سطح کلان حملی یادی در سطح دامن شکر جنویستاد با تاجو به صحبتهای شما مطرح کردیم پس از قصدگرای اخلاقی چگونه میتونیم که در ترویج هنجارهای مدارا و همدیگر پذیری در اخوانستان بحرمن شاید؟ این هم خوب است اتفاقا ببینید ما دو تا مفهوم داریم یکی ارزش ها یکی هنگار ها ارزش ها رو باید ما پیدا بکنیم درسته ارزش ها رو مایی که می کنیم بگردیم بسیار ارزش های خوب پرومی داریم واقعا همه مردم هم مردم مردمی سلط طلب در خلاف اون تبدیقات دروغی که در مورد مشکل مورد وقت جنگ کار ما جنگ نیست، کار ما خوشونت نیست، کار ما آرام است. در دنیا شما اگر بوید قانی مردم در دنیا کده ما میگن ها درسته، زمین مردم که ملدم قانی هستند، زمین که مردمی صلح دوست هستند زمین که مردمی با احترام و با اخلاق هستند، این اخلاق میتونید یک مبنا بر ما قدش ما ماباوج. بعد دید اگر ما مجموعه این اخلاق گری قدرده میتونیم به هجار دپیل قاید من بسازیم فقط اینکه خوبکش بسیم. این هنجان می‌تونه که واقعا جامعه به س ت هم ببره و هم مکم میسازم. یعنی ازال به فاق شما اگر تنها ارزش باشه به فاق میه ولی خیلی محکم نمی. و اگر این هنجاری ساختید، ساختیقایر من ساختید، اونجاز شما میتونید که مسائل ارزش های بسیار والا رو به تبدیل بکنید یا من به سمت همدلی همفکری نهادی نشود که اگر مردم احساس کنم که پشتش قابه هست پشتش ثوابه هست رسو پشت قضیه در حقیقت پاداش هست رسا این مداره رو بیشتر میسود نهی کمتر میسود که شما فرمودین هر چقدر قاعد من باشن جامعه به سمت مدارا و به سمت همدینی پیشتر می. هر چقدر اگر ما به کنیم ارزش ها درسته؟ هست؟ در جامعی تدیهی هم است بسیاری همی از هرزش استقاله میکنن به نهادهای حقوقی هرزش که در جامعه دینه تبدیل کنم و هندارها و قاعد مندیره برای اونی تحسیم تر کنم توصیف کنم و اتفاقا در نظریه های بسیار جالی درم از از مسائل بسیار مهم همپذیری قاید من کردن ارزش هاست و این باید نهادهای های این کار و این این گفته شده این نظام و که خوب در این جامعه افتزای دین کاره میکند ادیان با توجه به اون خاصیت ایڈیولوجیکشان با قایبندی مردم به بحث های باید ها و نباید ها خود به خود به اون ولی وقتی که شما این از حالت مبنای همون دینا تبدیل کنین به یک هنجار حقوقی مدنی این هم میتونی که کارثار خوشبه جامعه چون هم خشکوانش قریص دین و هم در جامعه میتونن خوشبه خوبی باغون یک عرض شوالان هم دیگه کنه. من تصوری می که مردم در جامعه ما حرکتشان به سوی مداره هم بیشتر هم هم من کشورهای همسایی ما که واقعیتش آدم وقتی مدام می کنن اقوام در جامعه ما خیلی راحت می کنن که لاره همسی چند دلیلی که عامل بکندی مواجه یعنی سیانه می توانیم خوبش استغاده یکی خب مثالی سواد است متاسفاده در کشورمون خیلی پایین مشکل سوادی مشکل آگه نام شاید هرچی استفاده میشه دومی که متاسفاده نگاه کشورها با ما یک نگاه ظاهرش خیلی دلسوزانه است ولی درونش خصمانه است متاسفاده جایی که میبینیم همه دنبال منافع خودشان هستن و دیده‌ام است ولی این مناظر یک طرفه می خیرم. این مناظر بیشیزید نه در اختلاف ما می بینند در او بدبختی ما می بینند و از من یاد است که ما را با تضادات بسیار درونی و با انصارهای جنگ و انصارهای شرور و انصارای تشویق می‌کنند این در, در هر کجای دنیا که شما ببینید خالی و یک انسانه جنجو با یک انسان خشونت دلب و یک انسان شرور بهش نگاه میشه چرا؟ چونی تبدیه ها کسی بیتسکنن همه همسایه های ما و هم بیگانگاه می کنن در حالی که ما زمینه های مدارا در ما من به این خیلی بیشتر ما الان نگاهی که در جامعه داریم هیچ کشوری نیست به اندازی. این کشور که این مختلف خیلی راحت با شلژ نفس باتاژو و مثلاح های عینی که شما از جامعه افغانستان ارائه کرده عملا ما در یک جامعه که صدگرار زندگی می کنیمیم اماباتاجو به بعض سهلنگاری ها و بعض جاالش های در جامعه وجود دارند هنوز این ارزش ها هنجارمند من پس در جامعه در حال گذار مثل افغانستان در شرایط فری کشور که جامعه در حال گذار هست چیگونه می توانیم که ارزش ها هنگارمنند بسازیم و مسئولیت به کی است؟ خب مسئولیت مشخص مسئولیت ا من ساختن یا معن نهادهای دینی هستند نهادهای دینی هستند مراکز تحقیقاتی هستند ما اون چیزی که در سطح کلانترش اسلام به همه تلقی می کنند نه امر و ما یعنی ممکن و فیه هم است وقتی که دادنم که به امر بمعروف معروف از اون وزیفه خطیفتر برمیگرده و آنما، دانشمندان، مراکز علمی که تقدیت بذارن کار کنن کارهای علمی صورتی ما واقعیتش اینه که در سطح بدنی مالا اگر کار از بکنیم سطح پایین ها با همه سازیم، مستش مشکلات خلق میکنم من به نظر میرسم، ما یک عزم لیلی نیاز داریم برای واسباد ساختن مردم کشور یعنی ما در قسمت یک نیزت باید ایجاد شده یک آلا اگر نام شده دید تو که یک حرکت بسیار وسیعه که حتی اگر شوک مراکز دانشگاهی مراکز علمی و نهادهای فیرویشی و مراکز دینی جنیس همه هم با هم همگام هم حرکت کنن جا سرمایه گذاری کلانی میکرد تا مردم اصطبعات یاد میگیدن و مردم با کتاب و با خواندن و با خودشان آگاهی نرسن و خودشان تفکر نکنن یکیناً فهم بیگانگان که تصفیحان رو فرابکوی میکنن هم به حالت در جامعه ما میگیدید که روز به روز جامعه رو بفتید میگنید هستند تصالی در همین جامعه همستند در باید ملک که مشکلات زیادی رو از و همه مسئولیت داریم ولی نهادهای دینی و نهادهای علمی مسئولیتشون تکیم دارم شکر با توجه به نگاه این کشورها که به افغانستان وجود داره، صحبتهای که شما مطرح کردیم بعضی کشورها نگاهشون منفی هست به افغانستان چیگونه میتوانم این نگاههای منفی را تبدیل به نگاه مصبت کنیم تا بجای نسل خشونت پرور و جنگجو به عنوان مردمان صاحبان مدارا و نسل همدیگر در سطح جهان محرم بشیم چی راهکار شما بشیم؟ راهکار معنیه بازم برمیگردیم به این برمون بحث خداگایی و بحث پروری، دانش پروری و در حقق خودسازی و خودکفایی علمی ما تا این قسمت نداشته با دست دیگران در جامعه ما باز است و اینا دنبال اهداف که البته ولی صداقت صد نمیگین که همان نیت بد دارند ولی طبیعتا وقتی در جامعه که از علم و دانش بهر کم داره دیگران وقتی نه وسوسه بس میشن برای سودجویی و برای تو استفاده های این جامعه باید خودش یک نهضت علمی شروع کنه دانشگاه های ما مکاتب ما مدارس دینی ما مراکز تحقیقاتی ما واقعا نیاز بسیار شدیدی که ما به یک تفکر و اندیشه درسته که مفهوم استقلال کشور دقیق و ما روشن باشیم مفهوم آزادی کاملا روشن باشیم مفهوم عدالت مردم رو دقیق بزنن چه است اینها رو اگر دقیق بزنن تا خواهی جان از اشتفان ما روز و تصمیر که چه مفهوم برم مردم خیلی دقیق نیست شما در دیگر خبر دیگر با ده دلار رای فروخته می در حالی که رای به مثلا آقای قطره خونه انسان هم نستم؟ با. قطره خود که کسی لازمه گفت کون خود راحت به ده دالت مفرشد با یا به یک نهمانی مفرشد ولی چه استفادگره همین کار کردن؟ با رای مردم و با مالی و با دلار و با همین خریدن رای مردم در دیدن و جامعه را به جهالت نگه داشتن و. این روز برد مطمئن تست همین از این من کسا رو میدونیم تا این قدم مصبت همه, همه کسانی درس خونده آقا نمیگم روشن فکر نمیگم خیلی سطح بالا همه کسانی که درس خوندن از عرب جبین امی ملت از طلاش افقان و زحمت کش همی ملت تانستن به یک جای که ولی کار بکنن دیگران رو شروع کنیم یعنی یک برنامه، شما با خصوص نهادهای تحقیقاتی، وقتی اندکی دست هم مسئولیت سودیار دارند می‌تونن کاری کنن. تا کیم می‌تونن طرح رو ما جامعه به سمت یک کار علمی باشه. درسته؟ حالا می‌تونیم یک باری ولی یک برنامه، اوتا مدت یا مدت، تولیل مدت، تا حداقل ده سال تصور ما این باشه که انشالله در 10 سال آینده کشور ما از هفتا دستد دستوادی میرسه در پین درصد نوید پین دستد ما اگر باستواد از کشورهای امسایی هیچ کم من همه چیز داریم کامو آنکو بزارت خالجی که افغانستان صرفتمند کشور دنیاست با خقیل تریم مردم دنیاست با باش درستن؟ با در اون خود باید برستن باینام آخر سوال برنامه امروزی. چگونه از کسردگراهی اخلاقی در حل منازعات چال شهر در فرانستان استفاده کنیم تا به سر اجتماعی و مدارا دستگید بزنید؟ بینید کسردگراهی اخلاقی از کرده و که ما همدیگر پذیری داشته باشیم علوش های دیگران احترام بگذاریم و با دید مستقل علوش های که نیتونه هم پذیری و ساختار یک جامعه موفق شکل بکن در کنار هم اونا رو به کار بیگیم نزا تحمل، مدارا خوشبرخوردی، خوشرویی در حدقت اون چیزی که قرآن برای ما بسیار با سراحت گفته به قیامت وظیفش دعوت هست نه سلطه بر انسان‌ها، ها برکونی لاسابی می رفتی برمینه بالحکمه با حق آخرت و عزی و الموحظة الحسنه با زبان میکوب بعد گفت اتا اگر اینم نشد کسان عامدن با تو مجادله کردن و بگفت جادلهن باللتینی احسن منجان دیگه تنزئی نکنی موزر فران بارها دید آیات بسیار داریم و فیغمبر کتاب میگرن انت مذکر لست علیهم همده مسئیدش تو فقط تذکر دی انجا اگر زبان میکوباش اگر منشی باشه، اگر رفتاری میکو باشه، اگر اخلاف میکو باشه، این جامعه خوب ولی اگر تفکر باشه که حرف من فقط باید باید با دیگر همه حالتان تفکرات و افراتی حرف ما کس رو کسی کردنش باید زدش این جامعه مثلا تهم دیدی نظر ما باید به این سمت حرکت کنیم اونم بر اساس حسوب دین خود کنیم چیز را دین به ما یاد داده، پیامبر و دفتارش به ما یاد داده بزرگان دین یاد دادن که این اخلاق نیکو یکتر این کاریست که ما را به همدیدی میرسانم و این اخلاق وقتی میشن نیکو که ما از اشهای دیگرانم بفردیم اون احترام میدیم تشکر جنابی دکتر وحید بینش رئیس پیشین و دهنگری بورد مستری دانش از صدور شما در برنامه کسردگارای و افغانستان از اینکه در ماسته مطالعات قصادی افغانستان تشریف باوردون یک جمع سفاست. بشکرش شما انشالله محفظ باشید. دینندگان و همراهان گرامی برنامه کسردگارای و افغانستان و پایان یکی دیگر از این برنامه ها رسیدین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا نستاید. محفظ و سلامت نامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی اکانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تیعیه و نش گردید